الله و لا من یه نکته رو دیروز عرض بکنم که دیروز متعرض شدیم این روایت که در داوین بود عرض کردم یکی زیری داره در مصادر ما این یه جریفه هر صاحب دائم روایاتی رو که نرمه می از همین مسادر ما انتراب داره ایشون در مصر بوده قیل از این جالاییشون قاضر خوضات و فقیه بزرگ اسماییلی ها بوده فاطمی ها بوده اصولا خب از حوزه های شیعه دور بوده یعنی در زمان ایشان کتب شیعه بررسی بشه مقارنه بشه کم زیاد بشه اصولاً کتبی که از این مراکز حوضه بیر ما دورن اینا در معرض این کتاها هستن این اشکال فقط به کتاب قاضی نعمان نیست همین کتاب معروف رجال کشک هم همین مشکل داره است اینه که مرحوم نجاشی میگه کسی رو در وجود اقلاق کسی در کتاب طبیعیه شون الان هم یک کسی تو سمرغن باشه از حوضان تو دیو باشه تو کش و سمرغن بوده و از کردن چند بار از کردن آلا ایاشی هم تو سمرغن بوده نزدیک ایشان بوده اما ایاشی به قوم آمده مشاهیخ قوم رو بیشه به بغداد رفته مشاهیخ بغداد دیده به کوفه رفته مشاهیخ بزرگی دیده مشکل کشی اینه که مشاهیخ بزرگم ندیده یک مشکل کشی اولا تا اونجایی که ما میگنیم مددار زیادی از مشاهیخ کش و فراغ و فراغ از اون دوربر خود سمرغند رو اینا نقور کرده یه مقدار تا قوم آمده قوم همه کرده. یه ظاهرش از مشایخ بغداد و مجاز بود او اون جای نقل نکرده ایشان پس بنابر کتابی بوده که از ابسار خوزوی دور موده در مناسل دور نوشته شده مقارنه نشده نسخه شناسی نشده سر کثات اخلا در کتاب کشی اینه دقیقاً از اون کتاب کشی که اخراز داشته اون نسخه اصلی کشی این نسخه موجوده ما سرش اینه که هم نسخه اصلی غلط داشته اینه خود شیخ هم خوشبین بوده به کتاب کشی این خیلی مهمه ها نجاشی خوشبین نیست به کتاب کشی میگه کتابون کبیر داره در نام کسی بل اقلا مرحوم شیخ میگه کتابون کبیرون کسی بل فواهد نمیگه اقلا خوشند این نشون میده که شیخ برداشتش از کتابیم بگیه درسته برصال این کتاب غلطه ما وصولا به جای بحث اینا نیست من مفصل میترجمم برای وضعیت که مناسبه و زیاد چه عرض می‌کنم اصلاً بعضی از خردها ای که در کتاب رجال شیخ الانداریم منشأش کشیه چون غلطه مجادی که شیخ گفته غلطه هم شیخ از کشی گرفته مشکل دیگه اینه که شیخ در نظر در ایامی که یه ناراحت بوده کتاب کشی نوشته تاریخی برایش نوشته از ما معنای تاریخیشون هم نمیدونیم که کمال کتاب کتاب خوبیز و خوبیز کدیو و کوابل احتمال غلط یعنی بوده با هم غلط خورد تفسیرش کرده یعنی اون تلاشی که در اعتباره بوده به این تاریخ سا متعتقانه سرایت کرده یه توضیحاتی میخواد که بعد بود لذا این کتاب دارالم اسلام خودش انصافاً مرد مندایی است انصافاً حقیقتا صاحب دایره تاریخ و دقیق توغالعاد فقیر بزرگ انصافاً حالا شیشه اهمی باشه و خیلی زیبان انتخاب شده در و خیلی درست و از نظر ادبی هم متنش قویه، مدرمولا و مدرسن خوش ابزاره. لکن مشکل کار اینه که چیزای نهروم میکنه که در اختیار ما نیست. حالا شاید از همون هستسته، من ایناش نیم میخوام بگم، مین نکتی میخوام خودم ازشون بگم که یه ماندی. و سنت دندجو ده قیلی یا ما. ورنه حکم به لحاقال ورنه حکم به شاید از این ابزار در میاره ورنه حکم به لحاق. پول ودیلو خوب نیست، بنظر سه ت ارشده، ولی حکم به لحاق. یعنی چی؟ این دیگه معناش این میشه که باز بگیم اجرت حرام این معناش دیگه بین حکم به حق. واقع خود دقت بکنید ما الان در دیوان فقهایمون می خونیم بحثاً اون روکسی تاریخیش توی من من اون من اینه. توی فقهای ما می خونیم که عقد اجرات بر قضا حرام ما اون مساله اساسی اون اینو خود بفهمید خیلی ظریفه. من ایراداً ارفردم این در چه اهل سنت هیچ کدومشون ندارن. مذاهب اربعه غیر اربعه که مرحوم های هم یه مقدار بیایم سرند ما در صفحه ما یه خسلتی داریم یک مرحله نصوص داریم باید. یک مرحله انتقال از نصوص به فتاها داریم یک مرحله فتاها داریم این ستا مرحله رو با جدا ببنید. این دقت نشده مثلا این کتاب فقر از بهترین کتاب های ما در مرحله انتقال از نصوص به فتاها خیلی مفیده بی نذیره. این کتاب خورزا در این جهدش بی ندیره. خود کتاب مغنه شیخ صدوق، فوق العادم، شرایع علیه پدر صدوق، فوق العاده این ها کتاب های که تو این مرحله انتقال از نصوص به فتابه. اما کتابی که دیگه فتابات و طبعای ما به نصوص هم هست. لیکن دیگه انتقالی نیست مثل نیست شرایع. پس سه مرحله داریم. آقای بروژیلی از این کتب مثل موقنه تحریمه اصول متلقاق زانول آتاله هست می گفتن این روایات این فتوا در مثل موقنه مثل سالی علی بنباوه این مثل است. این تحریم دیشان خوبه نمیخواه میگن بده. اما اون نکته پندیشونی که من عرضم کنم این مطور وقتی نمشته شده که در مرحله انتقال از نسوس به فتواه خود. تو این مرحله انتقال فتواه بای ما شکل خاصی داره. الان شما هم چطور این کارو بکنیم؟ الان دیگه بعد از شرای بعد و شره توسی سراییه این کار نکردن شما من رو این خیلی راحت همین کتاب هستیم یا آ آ دییکچ تو پیشون پیش بگداریید یا بر ساوارد در هر با روایات که از طر شهسب بکنیم مکررا را شهر میکنیم متون به را بیایم بر به چ میشه بر مضوع این کار که ولما کردن این انتابم چهیم این مرحله خیلی قابل توجهه یعنی اینها روایاتی بوده بهلذع عرض کردین در پیغمبر رضا اگر فتوایی آمد من خود من فقط دارم روایت داشتم ولی به من اثر و حجت نموشید این دو تا رو بکنید وجود روایت و حجیت روایت پیغمبر رضا یا مغنه اشیعه صدور اگر مطلبی رو فقط به عنوان روایت داشت این چه چوبه در شرک اما بودن در روایت یک مطلب حجیت مطلبی که دو تا با هم اخبار نه ایشون حالا که بود در نباتو کوجا دادن؟ اشکا منظور چی است؟ ما می‌دونیم شیخ صدق فتوا در موقعی نمیده مگر که منع رخ بده. دلیل به ما نرسیده. ما الان می‌تونیم ان شاء از کاتالوگ ما هست که اجرت در قضا حرام. خب شما از این فتوه تو از کجا این فتوا میده؟ ما اجرت نداریم رشوه داریم حکایت نداریم ببینید در حقیقت مصدرش اینه. این روایت بوده. الان این روایت منع اکلش صحبت ارشلات الحکم رو مرقوم عیاشی فقط همین مقدار شده از جراح مدائنی نقل کرده من سابقا توضیح این کتاب جراح مدائنی این کتاب بدی نبوده معلوم میشه این کتاب ج... الان مثلا رواه جراح مدانی اصلا به ما نرسیده <تصفح> است. تعجيبه روایت جراح مدائنی نه در کافی هست نه در فقیه هست نه در تاریخ هست توی عیاشی مرسلن آمده عیاشی هم کجا نوشته در سفرنگ اونم از اوزای میدور بوده این در کتاب دایم هم آده این کده نجده در می یکی این بر شرق یک قربار هست هست دوید از اون حوزهالی ما دور بودن تثبار بکنیم تثبار تاروشی یکی اون برنوشته شده یکی این برنوشته ها نمیتونیم این مشکل کار ما چون متاسفان حسن شد حسن عرض داشته دو تا بحثه کجا رفته حجت جد حسن بحث بحثه دیگه عرض داشته عرض یک مقدارش در کتاب ایاشی آمده صدر حدیث کاملش کتاب دائم آمده در پتال مشروع هم نیامده این نحوه شنافت حدیثه این راهی که شما میکنی حدیث رو اشناسی اینه در اول لالی هم خوب عوال کتاب ضعیفیه چون انها اینجا دیگه حدیث ولیشان مصرفت که نیست متعرض نمیشیم لعن الله الراشی و المرتشی و من بینه همه یمشیدی بینه همه یم یست آه بینه یمشی چیم شاید وقت رایش کنه آفیش هم حفظ بیشه بوله عربه سجش حفظ بشه هم حفظ بشه. بشه علایه این روایت در مسادر ما نیامجه در مسادر اهل سنت هست با این محده هم, هم دو تا خرابی کرده هم نسبت داده به ما که می از ایشون نسبت از قال ندید و بینه همه یمشی هم ندارید و راهش یست آه دارن چرا؟ من یمشی ندارم و رائش یه ات آبه اینو دارن هم از مثل خالی نیانده مسادر صحیح هم هست درجه دوش. بخالی. بخالی درجه در درجه دور غیر از بخالی بخالی صحیح درجه یکی در کتبیش رو من چرا در بحث رشو روایت لحن الله را شهر اونا دارن ما نداریم مثل این مثلا اوال الله این من خراب اهل سبحانه یعنی خیلی کتاب اوال دادی زعیفه فوق العادالی مرحومه دی مثل مرحومه جامال سال مسترک سعی کرده دفاع بکنه و اخیلن صدا رحمت در مقدمه که بر کتاب نوشته خیلی دفاع کرده خیلی مطالب غیر واقعی خیلی غیر سریع نیدی که ارز کنم که کتاب حدیث بعدی رو از جامال احادیث نهر کرد جامال احادیث خوبی گنداله مرحوم الحاج نوروزی گفت جمال الهادی در اختیار ساداتان یعنی در زمان ساداتان بود اما از این کتاب نقل نکرده کافی به صدور نصاب و تشدیدگاه به دیگران اسناد شده هیچکدام ایشون این سینم نکردن کتابا نوشته شخص محمد محمد شعیری تپزواری حدود قرن ششم بوده ایشون این روایت کتاب روزه کتاب مال ایشانه اصل اسناد نداره خیلی از روات در مصادر دیگه ما هست روالات عجیب غریبه این هم داره هم متن شکل رکی هم مزامینش خیلی واضحه در حال این جامال آهادیت هر جوش علمی نداره و خود اون مرزم و معلف اصلا شناخته نیست اصلا بیگ زوری هستن بیگه مراد محمد از محمد شعیری سبزهاریست خیلی احوالات اینشان روشن نیست که اصلا اینشون از چه خصوصیاتی بین اصلا ما مدرگران رو در کتاب جماله این اینطوره، حدس را محمد بن عبدالله، که الان محمد بن عبدالله معنی این 그죠؟ چون برای من سخت است به خاطر راه رفتنش در را مصادر نگاهم. این باعث یکی باشه که کتاب اشعیاس رو نقل کرده. الان تو ذهن نیست که محمد بن عبدالله به این اسم کیه نسخه معروف اشعیاس که در بغداد نقل شده، یک نسخه طله افشاریه که هم داره، نسخه سهل بن که از کلامی بغداد بوده سهل ابن احمد دیواجی معروف ترین نسخه ما حتی نسخه اهل سنت سنیان این کتاب رو دیدن البته بین اهل سنت این نسخه شاید یعنی اعتماد اونها بیشتر بر نسخه بوده که ابن عبی صاحب الکامل فتاوا خودشون جزء ائمه شعه در شهر سنت کتاب الکامل فتاوا ابن عدی انصافا بخوایم صاحبان معلوم الله و خیلی زحمت کشده. این ابن عدی خودش مصر رفت. خودش پیش محمد ابن محمد ابن اشعث رفته، یارو ابن اشعث. خودش مستقیم از درس میکنه من سابقا توضیحاتش دادم. این از تا اونجاییه که من می‌دونم دیگه سنی دیگه‌ای این کار نکرده. تا یعنی این کسایی که بعد اومدن به سفسه میزان قدرت از ایشون گرفتن. از ابن عدی گرفتن. اما ابن عدی از اهل سنتیه که رفته رسما در مصر و خیلی هم عجیبه میدونن چه کیفه مثلا فاطمیه، اسماعیلیه، شیعه امامیه. برحال چون شایع است بزرگان اهل بیت بودن به احترام اهل بیت چون این حدیث رو ابن کتاب ال این کتاب یک کتاب واحدیه یک سند ذکر کرده موسی نوای موسی بن جعفر سلام الله از پدرش اسماعیل پسر امام موسی علیه از امام موسی بن جعفر سادر صادق ابی هر اخوای علی قال علیان. رسول الله این کتاب یه سند واحد داره تو ازش امام قاله علیه رسول الله اینجا این سند اومده حدثنا محمد به هر حال این محمد عبداللهی که از روات این کتابه قطعا هم استاد جامعه حادیث نیست قطعا این حدستان که ایشون اینجا آورده من جامعه حادیثی داشت شمهش رو مراجعه کنم اگر تو جامعه حادیثی اینطور روزه قطعا حدستان ها کسی قطعا چون ایشون و خورده یه بخورده شده جاماله حادیثی و من اعرض کردم کتاب حدود سال های سال نوشته شده و ده نوشته و خود ابن از درنه سی تا و و یکی و پنجه به سهل نحن و اهل بغداد به مصر رفته لكن تل رو افتادی به نحن اجازه کتاب رساله است نامه است اجازه برایش گرفتن برای این کتاب و من توضیحات این کتاب و رو اعز کردم این کتاب در نیمه اوائل قرنه نیم چهارم به بغداد رسید یعنی در زمان به بغداد رسید. لکن ها و بعد دو تا بزرگان بغدادی مثل فهون کلینی و مثل مرحوم شیخ طوسی و این‌ها به این کتاب نکردند. اما اهل سنت چرا یکی از که از یکی از بزرگان اهل سنت بقول حجت علی امام ارویانی بهش این استفاء این مسلقه میگم امام شریف باشونه شیر رویانی استدلالشونه این همین نوصر فرغد بن احمد دیواجی رو معرفی می‌کنه. یکی از شفیعاتهای بزرگ اهل سنت که این کتاب رو نقل می‌کنه همین رویانیه ایشون هم اصولیه هم صحیح یه دقیقه من اعتصادم ایشون چون به اصطلاح اسماعیلی‌ها در اون وقت در تروزن سر غالبنماها که اسماعیلی‌ها شیعه امامی بودند و تعویل می‌کردند و باطن شیعی‌سازی هرپا با. و خلیفه دستگاه صور خلافت بغداد هم با خلافت مصر هم یه دعوا داشتن و جنگش شده و جدال داشته حالا ایشون یا به خاطر جنگ از حضرت خلیفه بغداد و ایشون اولین بار در جنوب اسلام اسماعیلی گفت این اسماعیلی‌ها تا مسلمان نیستن ملاحدهن عنوان ملاحده رو ایشون داد یعنی رو گفت اصلا مسلمان نیستن میگه ما, ما, ما شیعه هستیم نه نه شیعه ان نه سنی هم ملاحده از مثلا الان می‌بینید در جنوب خراسان تا قاین مفای هنوزم هم محله اینا میگن هنوز تو محله ما تو قم شما در اونجا هنوز به میگن محلحضه. این عنوان ملاحظه اولین بار رویانی بین اینها که اینها فقط تروریست نیستن ناسه نمسنون نیستن نمونه دارم بعدم خودشی ترور کردن خودم امی... اینم چهید درمی جرد <تصحیح> به قول معروف شهادتی دست خود اسمایلیان بعد از این لغب و دونها دار انتقام چیزن خودشم حیث این علمامو شهید میگن به این لحاظه در ترور به ایسا شهید شدن که ماکان این جنگ نسخه رویانی توسط مرهوم فضل الله راوندی قیل از خود راوندی این سهید اون سهید نیست به نام انوازه بیشه ما آمند پس یک بار این کتاب در قرن سال چارم آمند یک بار توسط سهید فضل دار راوندی بازم شهرت بگو نکرم بازم نسخه شهرت بگو نکرم در زمان حدود زمان صاحب مستدر نسخه از هند امردن در حدود سال قرن سیدزمون این نسخه هم بعضا توسط اهل گرجی چاپ شد. این چاپی که ما داریم اشعریات نسخه هنده. اوشن شد. اینم فرمیگرد به سبب نعمانی دیوانی. این نسخه الان مشهور شد. الان در مستدک هم چون اومد این رو الان تو جاهل حدیث هم آمده میان در اشعریات یا قربله چیز به اصطلاح یا جعفریات. اشعریات به که محمد اش اشعع ابن الاشعر الاش رو جعفریات هم اسم کتابه. من ارز کردم اسم دقیق کتاب کتبای جعفریه است این اسم دقیق بشید ما میگیم جعفریه از اشتر نیش کنون درست نیش کنونه توضیحاتش سابقا کردم این کتاب در اختیار ما قرار گرفت الان مشهور شده پس سه با توضع شیعه آمنون کتاب و اما به لحاظ نکته تاریخی این کتاب تشابهات بسیار زیادی با کتاب سبب میداره به یک احتمال بسیار بسیار قوی داره که این کتاب و کتاب و مستندس زیز و کتاب و مستندس و ادهی از کتابی که منصوبه همین رو این مرجعش به یک کتابی باشه که زمان همین رو در بین سالهای سی و هفت تا حدود پنجاه در کتاب مشکول شد به نام کتاب از یا وستان و احکام ماله ماله ها در بعضی از صحابه ما به زیدی ها به امیرالمومنین نسبت داده کتاب علی این بود ایشون در بعضی از ما بعضی به عبیدالله ابن ابی نسبت داده بعضی به ابی رافع نسبت داده بعضی هم به حارسه بن عبدالله حار همدانی نسبت داده اما زیدی ها طریقشون به علی نبی صادق قرار دادن اسماعیلی ها به یه قری زیادی مقدار از این کتاب الان در دائمل الاسلامی در راستای معارف الهی این کتاب اثر کردم شهر تولد از اینکه بخوام چند جلسه هم نکاهمیشو که اولین کتاب و اگر درست باشه کتاب اولین کتابی است کتاب، کتاب کتاب، کتاب که در دنیای اسلام موثق نوشته شده هیچ کس قبل از این عمر این کارو نکرده علیه یعنی تحت نظر حضرت یا مولا خود حضرت یعنی کتاب الصلاط کتاب الزکات کتاب الصاد اینجوری بود کتاب کتاب, کتاب بود و حتی در زمان قدیمی هم موجود زهرهون یعنی تا زمان صدوق هم موجود بوده فرک شاید تا زمان نجاشی هم موجود بوده لیکن نقل نکرده اما دائمان اسلام با اینکه که در مسته بوده این کتاب داشته ازش هم نقل کرده یکی از مذایع کتاب دایمون اسلام نقلش از این کتابه این مذایع مینام قدومی این مذایع مینام حالا یک شرحی داره که من دیگه خیلی طول بگیشه یعنی خیلی طولانیه دیگه الان و هر حال یک شرح طولانی داره که من شرحش وقت دیگه این،, این کتاب حدسنا ابن الله عشق به اون کتاب و اینجا اینطوره قال رسول الله ار و مرتشی و ماشی بین همان ملعونون پس قدیمترین مستر ما راجع به این حدیث ان رسول الله کتاب جعفریاته این قدیمترین مستر نه اوال لالی اوال لالی ارزشی نداره در غنی ده اما این کتاب ارزش داره مشکلش چیه؟ ارز کردم این نسخه کتاب مختلفه مشکلش اینه که این متن رو الان ما در جعفر یاد نداریم جاید تو جامل آحادی داره خود کتاب جامل آحادی کتاب قویل میانیم شد مشکل چیه؟ گفتیم الراچی و المستشی ما داریم اگر بخواهیم تریفی داشت شداشیم همین کتاب پس ما از کتاب عشقیات داریم هر و المرتشی و الماشی بینها ما و من بین ها ما ملعنون مشکلش اینه اگر در خود کتاب جعفریات ثابت بود با ساحدی قابل قبط ساحدی نه مخوام میگه اون جعفریات قابل قبوله. مشکل این شد در یک نسخه از جعفریات که در اختیار جامع احادیث بوده بوده در بقیه این نسخه جعفریات نیست نسخه این که این ما الان ده قصد الان اینطور داریم مثلا در خود جامال احادث نویت علی ان الراشی و المرتشی و الراعش و الماشی بین همه حدیث شماره پنج بعدیش ملعونون و مل الماشی بینه همه ملعونون ظاهرا مل در نسخه جعفریاتی که ایشون داشته تویدی شده قال علیهن قال رسول ده دوباره قرده ایشون باز داره وقیه با و قال رس... لعن الله الراشی و المرتشی و الماشی بینه همه تمام اینا از کتاب جامل احادیث که سندی نداره بعدش ان شاءالله میخونیم ایوه. مطالب دیگری که حالا بگذر بکنید اون وقت دقت بکنید ما از جعفریاد یاد داریم در کتاب جعفریات اینطوره من از صبح الرشوه فلهو اینه داریم که دیگه به با عنوان ذی آورده و باز داریم ما از این به اصطلاح از کتاب جعفریات یه عبارت دیگری هم داریم این در کتاب جعفریات به اسنادی از علی بن این تو کتاب جعفری نر لابد دارن لو قاسم و رزق بن جریر و لا ابو قاسم و رزق قاسم ولابود من حاسبن ورزگندل خاصه نسخه ای که ما الان از جهان فریاد این داره این نسخه ما عیب نیسته به نسخه خود دارم در دائم هم داریم در دائم اینطوره آن علی انصرافات الله علیه آن هم قال لابود من اما را تن ورزگندل این ما تو مسلمانی نیستی از که من جهان فریاد در مس نوشته شده کتاب دارم هم در مس کتاب دایم برای شنافت نسخه جرفتی خیلی خوبه مثلا نسخهی که ما داریم قرمه سیزده ها به مقابله نسخه اوچنشون اونتون رو رو هم کنیم در مثل دایم اینطور لابد من امارتون برای روزنده همه تو نسخه الان ما نیست لابد من عریف عارف به اصطلاح مثل بزرگ محله که میگم مثلا مختار میگوشن الان مختار محله میاد هر اشیعه فردی داره که میگه این جزو ما هست جزو در اون تقسیم بندی مثل اداره آمارمانندی که این جزء چه هست یا نه مثلا کفنشون این چهر میکردن توخره و رزق دل لابد من حاصل رزق دل حاصل این دار میتونم ما داریم لابد من قاضی و رزق دل قاضی ما هم داریم تو مشهدهای الان هست. ان و کبر هان يكون رزق القاضی علی الناس الذین یغنی لهم. و لا این اجرت. اینجا نداریم. در مشهد ما نیامده. اما چطور نگاه کنید دفعه بکنید تو مشهد ما نیامده اما فرجوش تو قبیله آمده اونم روایتی تو صفحه این نقطه فمید رو بشن گالی و کن گالی اوقات حتما اینها به حسب زهان باره بارد نیکن همشه اصل دیگری داشته و کره ان یکون رزق القاضی اولنده یه رزق القاضی اولنده دیمه اجرم؟ ولا بد من ولا, ولا بله الناسی یقوی لهم ولا که من بیتن ما مگه آتون باشه عبارت صدوق رو خوندید در خود فمید با کراه هست و رزق القاضی کراهت هسته قاضی از رضمان سلطان در روایت رو بود روایت این داره که سختو اون روایت رو او بوده اما فتواش کراهت ایمام نشون میده که خیلی از مسالی که ما الان درش توضیح نداریم در سابق در مطرون روایات بوده ویمام نرسیده امام تصدیح این نسخه الان ببینید؟ بلا سه روشن شد مقابله پس الان ما سه تا نسخه از کتاب جعفری یاد داریم یکی که در اختیار اصحاب جامال اخبار بوده اصلا به ما نرکنه نه در دعای موجوده نه در کتاب های ما موجوده از کجا بیرشان از این رو بیرشان توی نوازه را مرمون هم نمازی. یکی که در نسخه ماست سه تا داره یکی در نسخه دعای پنج را داره یه زیاف... اضافه هم داره وکر همیخون لهم. رزغل... ولا چه مثل ما این زیادی هم داره؟ این همون نقطه اساسی که من عرض کردم ما هم باید مسادران رو تشخیص کردیم چند با خیلی عرض به مطلب رو به مجرد این سنده صحیح زیفه رو بزنیم کنا یک کار بسیار مهم شناخت نسخه کتاب ده الان از مستر وارد که مثل این مستر وارد من توضیح دادم در محل خودش از قدم اسماهی پسر موسی و جعفم سامالله علی ایشون مدتها شاید چهاری سالش هم بوده چل... مدتها تو مدینه بود تو مدینه این کتاب برای کسی نقل نکرده خیلی هنچینه ایشون رفته تو مصف برای پسرش نقل کرده پسرش هم برای ابن عشق و از پدرش موسی و جعفم نقل کرده کسی از اسامات این چیزی از موسی و نقل نکرده خود پسره هم تو مدینه در نکرده <تصفيق> از کردیم اسمانیل هم به فرزندان شناخته شده موسی، چون صفوان در سال دیویست هجری که در مدینه فوت میکنه همین اسماعیل برش نماز میکنه این شخصیت اسمانیل به انشون میده وخ... وفات شهاز موسیقی فرم 183 یعنی لاقل حدود سی ساله بوده در این حالا کی به مس رفته؟ چون دعات اسمایلیها مختیان به مس رفتن، ایشونم می‌میشه بعضن او بکیش چون نداشتن میگه تا کنوه ولی دو به مس. اینا رفتن به مس به سلاح نزدیک، جوز خطا این غللو زدن که حکومت هشی لطفا در مس زدن. به گفتم دنم خودش لطف نکنه، اما دست بغل گزش او بدلال مهدی هیجانگیان حکومت کرد. ندست اینها. پس این نکته اساسی اینه که این کتاب رو ایشون از فلرشون، امام کاظم نقل کرده. خودش دید که مثلا 40 سالش شد می‌دونم دقیقاً چون سال هجرت ایشون عمر دقیق به مصر نمیدونه ایشون در مدینه بوده در مدینه برای اینکه تنحر نکرده. نگفتون شب وهجرت. اون وقت ایشون در من این کتاب احتمال بسیار قوی داره که این کتاب یک مجموعه بوده مثل کتاب سکونی بوده یا بیشتر سکونی بوده از اون کتاب فزا و الاحکام قضا و الاحکام توش بوده شامل روایت متفرقه میگه توش بوده پس یک مطلب این است که این نسخه چه ارزشی داره من الان اجمالا خدمتتون عرض کردم تاریخی خیلی مفصل داره الان متعرض نشدیم صابرانی اجازه گوش بدیم یه وقتی دیگه ان شاءالله خود توجوزه میشه تمام اون مش... مشکلات یک طرف اون مشکل اساسی نسخه این کتاب الان مختلفه نتیجه اولا بر خود کتاب که اعتماد مشکل عرض کردم حالا خودی اعتماد بر کتاب سابقا گفتم در این بحثی آخویی سابقاً در دوره اولی که نسبال فرار نوشتن مکاسه فرمدن،, فرمدن بر کل کتاب اعتماد کردن اخیرن اشون تفصیل قائل هم اگار که از مبانی تکمیلات رو به خوندیم برای آن اشون میگن در،, در این عشقسیات اونایی که در پلان کتاب پلان کتاب پلان کتاب هست اینا خود جد بقیه نهند چون اشون اوناسش هم واضحه چون میگن مرموم نجاشی اسم این کتاب رو برده اما نجاشی چند مثلا فقط 7 کتاب اسم یا ده تا کتاب اسم برده. اونی که الان ما داریم مثلا 12 تا هست اونی که الان ما داریم بعضی کتاب ها تو نجاشی الان موجود نیست بعضی‌ها اینجا موجود در نجاشی موجود نیست ایشون میگن اون مقداری که نجاشی هست اونا رو قبول دارن. اون مقداری که نجاشی نیست قبول نداره تافتی و یه روایت که خب محل محل کلام دیدیم. که آیا در زمان قیبت مورد قیبت نه قیبت زمان ما مطلبsyre. ما مستعده در مدینه اصلا در خراسان شیعه در خراسان آیا فواها حدود رو جاری بکنن یا نه ازده ای مختن از معاسی مثل آقا آیا در جلد هفت جابون مدارکشون که بعد میرشن تصلاح کلام های خوبیه نه رو متقدم میکنن اشون نظر داره برای بعد قبول میکن در اونجا داره که و او حدود و علی اله علی امام من کتاب غفاری دا قبول داریم اما این روایت از یک جایی که در کتاب نجاشی نیامده دقت کنید اول خود قبول می‌کنن که نه این رو قبول نمی‌کنید حالا نجاشی نمی‌ریسته باشه نه نیست که مباطل باشه ما این روایت قبول می‌کنیم قابل اعتماد یک روایت کلیدی هم حدود در زمان این رضایت اقامه حدود مرحوم ها خوی قبول نمی که به سهتش به امام باشه، فقیر باشه فقیران میگن اقامه بکنه جوابشون از این رضایت اینه من این توضیحات سابقه هنوز مطال توضیحات زیاد برسید بگه ما رو برسید به هم مداره که متناسبه پس راجع به رضق قاضی و اجرت قاضی در کتاب جعفری چیزی موجود بوده و راجع برشه عراشی و مرتچی در این کتاب بوده اما متأسفانه اون نسخه اصلا به ما نرسیده فقط تو جمال اخبار مراجع کرد و برای شما روشن شد اسو وقتی کتاب به بغداد آمد اصحاب طلقی به قبولی نکردند حتی بعد ها که مضمون راوندی کتاب رو را نقل کرد از رویانی اون از طریق رویان نرسید. اون نسخه رویانی هم نقل اونم با اصحاب طلقی به قبول نکرده اشتماعه بین اصحاب از زمان مصدقه که هست قصد را هست خیلی طولانی دیدید خصوصا اینکه که من از ما دو اولین باری کتاب چاپ کرد چون چاپش که اصلا موجود نبود ایشون کتاب رو چاپ کرده همین نسخه هنده نه نسخه رویانید نه نسخه بغداده من توضیحات دیگه عرض کردن سر رهدم قبول اصحاب رو نه عرض کردن دیگه الان پس مشکل ما جا که این که از آن الان از, از جعفریات داریم مفتن قابل قبولیه متن جعفریات ما اینه لابد من, من قاسم و رز قندل قاسم من قاسم و رز قاسم و لابد من حاسب و رز حاسب این در جعفریات موجوده ما نصحه موجوده اراشی و مرتشی من اونون اصلا نیست تو دعای من نیست فقط در اصلا جمال اخباره. در کتاب دایم اجرت هم ذهته شده که من نمیدارم دایم خودش چطور جمع میکرده چون ظاهر اون روایت این حکم بر هر سوال اجرت جایز نیست اینجا کرهه داره نیم کنم آده ایشون هم لبرکراهت کرده اون روایت سوال یا چه حالی از فرم و فیه قال لعنه الله هر راشی و المرتشی و بینه همون اینه قال رسول الله این روایت در کتاب اهل سنت هست در کتاب ما موجود نیست الان در جامعه احادیث نقل کرده به احتمال بسیار بسیار بسیار قوی از اهل سنت گرفته از جعفریات به احتمال بسیار بسیار قوی از اما گرفته و با در کتاب جعفریات قال رسول الله فر وسیعه تلالیه یا علی من از صحب سمن و سمن الکر و سمن الخرم و محر و زانیه و رشت و فرحب و عجر و کاهه. این هم دیگه نداریم من فقط یه توضیح اونتو بهت بزرستیم میخواب من ساده شیعه رای روزیاد کار رو کنم یه یعنی آزاد بندازه بحث کردیم یک مجموعه ایستنامه وسیعیتو نبیل علیه این مجموعه چند تا وسیعیته یکی از این آقای محاصر ما همش ما اینو می‌فرمایید مطلبی این ایشونه ایشون جامع کرده در وصایای رسول وصایای رسول این تحلیل سنتی و تحلیل تاریخی نفرمودن کل همین واسه بس. این وصایای متعدده است دقت می‌کنید خیلی متعدده قصرش طولشو طولش و قصرش و باز یا مثلا 2 صفحه باز یا 3 صفحه چند وصیتت مثلا یه مقداری تو کتاب دا... تهذیب الامور اومده انفردان دیگه نیست وصیت طولانیش تو فقه اومده خیلی طولانیه اینجا تیکش آمده اینی که اینجا آمده با جای دیگه نمیده خیلی خیلی این وسیعت رو علیه گیر داره هم به لحاظت سندی از سامینش متعدده یکی نیست اشتباه نشده مطونش هم مختلفه لیکن مطون مفصل حتی مثل این مرد ظاهرا جعلیه نه مفرداتش مفرداتش رو باید تو متفضل از تو داریم یهو خط باز روزمان انس و ابو هرره رو اینا یه کمی لازمه چی ان کارو کرده مثلا 20 تا 30 تا روایت برداشته اسانید مختلف مصادر مختلف اولش یا علی انشی یا علی مثلا که <تصفح> مسئله حدیث و آورده دقت یک مقدار جهلی هيئت ترکیبی جری مفرداتش اصلی داره و ازیش نداره این یکی تو اونام نیست بازاله مشکلو این یکی باز یه مشکل دیگه داره درazem به هر حال جمعاوری اینها خیلی خوب جمعاوری شده و مخصوصا اگر تحلیل سایتی بشه و میشیابی بشه و تقریبا میشه گست دزن روی چند تا امسان منجهولی که در فرمت واقع شده که این کارار اینا انجام دادن فعلا هم این رو ما نداره. این روایت این روایتی که که مثلا یا علی کذا و کذا این رو ما فعلا محل نداریم که در داشته باشیم نه. روایت بعدی که ایشون داره در کتاب شکر رزا رویه یعنی انه علیه السلام قال حد این عویه ان آبایه ابن طالب این جزا مسانیل از از رزا مستنده از فدر بزرگوارشون که قولی تعالی از کالونه لسو قال هو الرجل یغزی لأخیه الهاجه سنه یغبل و حدیگته این هم یک نوثته این روایت رو ما داریم الان پیه کتاب حدیث که کتاب جامعه احادیث ایشون نقل کرده ما هم این رو داریم این روایت اینطوریه بله این رو مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار رضا آورده در اینجا در صفحه 79 روایت کنون فی قول الله عکار به صبح قال رجل الرجل الذي یغلی اخیه الهاجه و البته تو سند شوشان نیست اما اینه جاری جاره احادیث جاره احادیث این اصلی داره البته مرحوم آیت این آی که کتابو نوشته این روایت در ذیل اوورده در وقدمه یاتی آورده و یه شماره جدا بشه این همون روایت است جاره هم از عنوان اخبار رضوی تفسیر عیاشی از جراح مدانی که بیرون خوندید قال من اكل الصد ارشدت این الان توضیحی در شماره 2 دادند روایت جراح مدانی در کتاب مشکور ما نیامده فقط در کتاب جراح مدانی کتاب معروفی بوده کتاب گمنامی نبوده فقط صبر حدیث در دو کتاب آمده صبر این حدیث یکی در تفسیر عیاشی مرسله که در اون طرف شرده یکی هم در کتاب دایمال اسلام مرسله که در اون طرف قرده هم هر دوشون ما خارج هم در دائم الاسلام یک زید داره که نداره این روایت جراح نداره نیست در حقیقت یکیه از کتابش سیدی باقی مونه؟ بلا؟ از کتاب جراح نه ایتی بعد دوستان گفتیم جمع کرده تجمیه تر جراح نداره کتاب بول حدیث شماره 10 کتاب بول هم... امامه خب بیمه احتمال شدیم شده, شده. <تصحي> الله اللہ حالا دو دوستان رو دوستانیم به دو کتاب شماسیم بلا حالا ضروریه نیست بلا؟ لطفاً من سؤال که که ما رو جایی دیگه، منم دارم دقیقیه، من نمی‌دونم. حالا من مش اینکه شما نمی‌فرمایید ما چون با قرائن قابل قبول نیست. کل لایق بعد خوکیل شواهد نمی‌مونه. مثلا روایت جعفری یزد، این توبه جعفری روایت سکرونی دارم، مردی ما خود جرفریات رو گیر دارم، همون قرآنیم براش نهارم احتمال اینکه جرفریات همون کتاب سکرونی باشه من چون سابقاً توضیح چیز دارم سکران مکنم نکته فنیش از به روز نگفتن